بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه هفتم یا الله اعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی علی سیدنا شفیع جنوبنا و بالقاسم و علی احل بیت و الله علی عداهن و جمعین الی دو قسمت کرد یک قسمت سهم امام علیه السلام است و یک قسمت سهم سادات است اون قسمتی که سهم سادات است باید به سید فقیر داده شود سیدی باشد که فقیر باشد یا اگر ابن سبیل است یا چه در شهر خودشون غنی است و تمکن دارد ولی حالا مسافرات آمده و خرچش تمام شده و در و سر گردان مونده به اندازه خرجش که برگرده بهش از وقت خم می شود داد هرچه در شهر خودشون غمید بنابرا این خست باید یک نصفش به فقیری برسد که سید باشد این رو قبلا از عرض کردیموررز عرضم کردیم اینکه سید دووارد اون کسی است که نسبش به هاشم که جد علایه رسول الله صلی الله علیه و آله برسه من این تمام بچه های ابوطالب هر چی عبد المطلب و ابوطالب و بقیه بچه های عبدالملتaleb هر چی بچه دارن هر کسی نسبشون به هر یک از اینها برسه خمس بهش میرسه من از خمس نیبرن اگر متن شد این که بلد ابوالهاب بچه داشته باشی خمس میبره از میشه از عبی طالب فرادرهای امیر المومنین بچه های عقیل بچه های مسلم نه همه همه خونسبرن این رو قبلاً ارز کرده بود مطلبی که الان ارز میکنه این است که باید که سیراک خونس بهش میگیم شیعه دوازده امامی باشه حالا سونگی های بن العباس و نه اینا بر نیستن و شیعه باشه حالا اگر شیعه بود و دوازده امامی بود و وقت اگر نسبش فرض کنید به عقیل میرسید به عباس میرسید خمس بهش میرسه و اما که به بچه های پیغمبرم که باشن هم بهشون نمیرسه باید به شیعه دوازده امامی باشه و حتی شیعه های غیر دوازده امامی هم بهشون خمس نمیره شاید الان شیعهایی داریم هفت پس مشه شیش امامی که داریم در هند که خیلی زیادن شیش امامی ها از مشهد دیگه نمیدونم از امامی هم هست واقعیه هست الان یا نه به حال شیش امامی یقینا هست در ازمشهد هند دو تا فرقه هستن یکیشون بهرهی ها اسمشونه یکیشون هم آخانی ها اینا معلوم جدا هرکنه میشونن شیش امامی ان تازه صادقوش رو قبول ندارن حالا اگر اینا سید بودن به اینا خمس نمیشه داد شرط خمس این است که فقیر باشد و سید باشد و شیعه دوازده امامی باشد این یکی از شرایط برنده خمس و همچنین شرطش این است که علمن و آشکار گناه نکند لازم عادل باشه چیعه باشه، یه فاسق باشه ولی مخفی گناه میکنه کسی خبر نداره اگه مخفی باشه گناه هم بگی نداره میشه بهش خمسته ولیکن اگر یک کسی که آشکار گناه میکنه الان من فرض میکنه تو خیابون و حال معصی میاد بیرون به همچیش شخصی که آشکارا معصیت میکنه گرچه فقیرم باشه اون بهش داد. اگر کسی متجاوره به معصیته، اگر دانو شد که فتوای فقها این است که مثلا ریش تراشی حرام است، اگر علناً متیشو متروشد، این بهشت سهمزادات نمی‌شود. پس از جمله شرائط گیرنده ای خون این است که متجاوره به فسق نباشد. علناً فاسق نباشد و فسق نکند. که اگر متجاهره به بود خمس بهش نمیشه و اگر مخفی خو گناه کند اگر این خمس دادن ما کمک به گناهش باشه بازم نمیشه بهش خمس دادن. اگر این خمس دادن ما کمک به گناه او باشه و اعانت برگسم باشه بازم نمیشه خمس دادن فضل فرماده بند خدایی از این شاید کسیست که فرد از میکنم مشروب میخوره مخفی هم میخوره ایش که هم خبر نداره ولی من میدونم الان این پولی که بهش بدم نیره مشروب میخوره در اینجا نمیشه خمس بهش داد گرچه متجاهرم نیست مخفی کارش ولی چون این گناه این از این دادن دادم خمس کمک به گناه اوست این هم جایز نیست نمیشه پس بنابراین کسی که خمس میگیرد باید فقیر باشد باید سید باشد باید دوازده ما باشد باید متجاهره به فسق نباشد و بایستی که این خونسی که به امیدیم کمک به گناهش نباشه اگر گناه کاره. ولی عادل لازم می لازم این عادل باشه مخفی گناه میکنه ولی این خمسی که ما به امیدیم کمک به گناه او نیست این اگر یک کسی در سفر معتل و سرگردان است که بهش میگیم ابن سبیل اگر سیدی است که در سفر معتل مونده بهش خمس میدیم ولی شرطش اینه است که سفرش سفر معصیت نباشه. اگر سفر معصیت بوده خمس بهش فرض فردون مثلا از خونهشون رو افتده اومده مثلا میکنم ایام زیارتی آمده مشهق خیلی شلوقه اومده تو هرم جیب بری برای این کار اومده اصلا که از خونه شون را افتاده برای دزدی و جیب بوری. خب این سفر میشه سفر معصیت اگر از خونه شون را افتاده آمده برای انجام یک گناهی یک مؤمنی را میخواد بکشه یک مؤمنه بیگناهی را حالا یا بکوشه یا موفقم نشه ولی این سفرش سفر معصیت بوده این سفر معصیت سفر معصیت اگر کسی تو سفر معصیت معتل موند و نخرجیش تموم شد خمس بهش نمیشه پس بنابراین شرطش این است که فقیر باشد و باید متجاهر به فسق نباشد و کمک این با دادن خمس هم کمک به گناه او نباشد و اگر ابن سبیله سفرش هم سفر معصیت نباشد این هم راجعه به این جهت این هم تمام شد اینا شراطت دیرنده خمس گاهی اتفاق کسی از یک کسی از یک سیدی, سیدی طلبی داره و این سیدالا فقیره آمده از بکنش جنس برده برنج خریده نخود خریده پاچه خریده ولی حالا این نداره بده این شخص میخواد بابت خمس این طلبی که از داره بابت خمس شساب کنه کسی که از سیدی فقیر طلبی دارد و میخواد بابت خمس حساب کنه ورمویان باید این کار رو بکنه خمس رو بده بهش بگه این مبلغ بابت خمس هست که میدم به تو و بعد اون دومده به برگردانه در بابت دینش به او ادا کنه و رد کنه همینجوری پیش خودش بخواد بیشینه فکر کنه که اون تلوی که من دارم بابت خمس باشه و من این کار دوست نیست و که از دستگردون کنه باید این پول رو بده بهش بابت خمس او قبول کند از بابت خمس و بعدا برگرداند به این از بابت بده مید. این مسئله ما تمام شد اللهم شد